بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله طایبین و مجلس دوم از سلسله مجالس کاتبان رو برگزار میکنیم از همه محققین و اهل دانش که تشریف فرما شدن تشکر میکنم این جلسه رو میزبان محقق ارجمند و دوست گرامی جناب آقای آلتوقرول ارتکین از کشور ترکیه هستیم و به معنای مد شجاع مرد قابل اتکاره اینطور که خودشون ترجمه کردن. ایشون متولد شهر آدانا در ترکیه هستند و ساکن استانبول هستند تحصیلاتشون رو در حوزه علمیه قوم گذروندن و بعد در دانشجوی دانشکده ادبیات زبان فرانسه شدند در دانشگاه استانبول مترجم و سردبیر نشریه نامه آشنا هستند که از سال 2002 تا 2007 ادامه پیدا کرد در هجده شماره مترجم و پژوهشگر مرکز موسسه کوسر استانبول هستند کارنامه ایشون کارنامه پرباری است در کارنامه خودشون فهرستنگاری نسخ خطی کتابخانه را دارند کتابی رو تصحیح و تحقیق کردند با عنوان مقتل آل رسول نوشته لامعی چلبی از قرن نهم و دهم هجری و مقالات مختلفی در زمینه مقتلنگاری به زبان ترکی در مجلات مختلف علمی و پژوهشی منتشر کردند. در کنارش کتاب‌هایی را از زبان فارسی هم ترجمه, ترجمه کردند که طبیعتا نگاه همان نگاه شیعی است کتاب‌هایی است از علامه طباطبایی، شهید متهری و همچنین سیره تاریخ اسلام تاریخ سیاسی اسلام های رسول جعفریان که باز توش تصحیحاتی هم مداخلاتی هم کردن اضافه بر ترجمه سروی دو شماره از مجله هجاب بودند در ترکیه که خب نگاه ادبی داشته و خودشون کار ارزنده و مهمی که اخیران کردن تأسیس است تخصصی در مطالعات شیعی به زبان ترکی که خب طبیعتا بدونید که جاش خیلی خالی بوده در فضای ترکیه یک مجله تخصصی در مطالعات شیعی ای باشه توش مقالات متعددی رو حالا جدای از تعلیف ترجمه کردن از زبانهای غربی از انگلیسی و فرانسه و چند مقاله هم از فارسی ترجمه شده و دو شماره اون الان آماده انتشار هست کاری که در دست انجام دارن مقاله ایست در باره نگاره ه که در اونها نماد شیر به کار رفته و اساساً تمرکز ایشون در اکثر کارها و مقالاتی که منتشر کردن در دو حوزه مقتل نگاری در زبان ترکی و نگارهای شیعی. کاری که امروز ارائه خواهند کرد نگاهی است به یک سری از مینیاتورها و نگارگری که در نسخ خطی موجوده و درباره امیر علیه السلام هست و نمادهایی که مربوط به خلافت و امامت درون هست رو بررسی کردن محصول مطالعه طولانی بوده و خواهش میکنم که ارائه بدن و همه ما استفاده کنیم و السلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم من تشکر می از آقای آغ... سید علی تبابایی که ما رو اینجا دعوت کردن، این فرصت رو برم فراهم آوردن من اول میخوام یه چیزی رو توضیح بدم اینجا هر وقت که من حضرت علی میگم منظورم یک شخصیتی است که این دو فرقه بزرگ اسلامی تسنن و تشیع قبول دارن هر وقت میگم خلیفه علی منظورم اون شخصیتی هستش که سنی ها قبولش دارن و وقتی که میگم امام علی اون شخصیتی هستش که ما شعیان قبول داریم به عنوان امام فارسی گفتن خورده برایم سخت دو زبانه هستم به خاطر این فکر میکنم زیاد به متن نگاه خواهم کرد معذرت میخوام هنر نقاشی یا تصویرپردازی یا نگارگری فارسی خیلی کلماتی به کار میبرند به یک معنا در جهان اسلام در کارگاه های نقاشی وابسته به دربار که در منابی عثمانی بانها نقاش نقاشخانه در منابی فارسی صورتخانه یا کتابخانه گویند شروع شد در قرن 16 میلادی یک چیزی که آی سید علی تبا از من درخواست کرده بود این تاریخه رو به هجری تبدیل کنم من در مقاله هم همش رو به میلادی نوشتم سعی میکنم که در اصنای گفتن به هجری تبدیل کنم هنر نقاشی از نیمه دومه قرن ششوم اولا در آثار علمی همچون کتاب و مکانیکی جزری به کار برده شد بعد از قرن سیزده میلادی هفتم هجری در آثار تاریخی و ادبی رواج یافت و تا قرن یازدهی هجری با تغییر، توسعه و تنوع سبک و شمایل نگاری آیکونوگرافی ادامه یافت تثبیت عناصر که در روی کردهای شمایل نگاری در مینیاتورها متفاوت هستند برای موضوع بحثم من که تزیه و تحلیل شمایل تصاویر تصاویر حضرت علی به عنوان یک خلیفه و امام است خیلی اهمیت دارد تحقیقات نشان می دهد که شمایل نگاری که در مینیاتورها استفاده شده رابطه مستقیم با های اجتماعی فرهنگی مذهبی، دینی, آ... دینی حامی آن نسخ ارتباط محکمی دارد اگر هنوز برسر این که در تمدن اسلامی حامی ها کسانی بودند نقاشی ها در آثار خطی چگونه تولد می شدند و در نتیجه در مینیاتور شمایل نگاری تا چه اندازه تأثیر داشته باسا ادامه دارد اما آن تحقیقاتی که درباره نگارگری دوره تیموریان عثمانی و صفوی نشان می‌دهد امتیاز <coughs> حمایت از آثار مصور نسخ مصور امتیازی برای حکمران یعنی پادشاه یا سلطان یا شاه بود است به عقیده برخی پژوهشگران حکمران به عنوان حامی دیدگاه و جهانبینی خود را در نقش خانه که محل تولید این آثار هنری بودند با عنوان قانون در و گسترش می‌کرد. با زیاد شده تعداد حامی ها که در پاشاها مثلا در عثمانی آغاها میگه ما حالا شما در ایران کسانه بودن من خیلی نمی‌دونم، اینا هم وارد این زمینه شدند حامی ها در گذر زمان زیاد شدند و این روابط حامی و هنرمند رو یکم تغییر داد اما همیشه پسند حاکیم یعنی پادشاه در, در نسخی که در داخل دربار یا خارج از آن تولید می شدند اساسی کار شد و در شمایل نگاری وابستگی به منابیه دربار همیشه ادامه یافت که هم این ادامه دارد روی, روی کرد شمایل نگاری در منیاتور علاوه بر متابقت با نگارش دینی مذهبی حکمران مسلمان و به تصویر کشیدن این باورها با, با ایدیالترین شکل ممکن در تصویر و بر روی متنی که نقاشی به انتعلق داشت و جزئیات فرامتنی که مربوط به حافظه جمعی یا حافظه فرهنگی بود نیز تأثیر می گذاشت. از این رو به تصویر کشیدن حضرت علی به عنوان امام شعیان و خلیفه اهل سنت که نقطه اختلاف و جدایه های بسیار در تاریخ اسلام بوده شمایل نگاری و تلاش حکمران با توجه به ای که منصوب به آن بوده و میراثی که موظف به محافظت از آن است اهمیت زیادی یابد. از این رو در مناقب نامه یا تاریخ های مصوری که تاریخ دینی خاندان ها و سلسله سلسل نامه های مسوری که سنت های سیاسی خاندان و حکمران را به صورت شجر نامه به تصویر میکشند تصویر حضرت علی به صورت نمادین تجسم شده و این نمادها به نوع وظیفه برجست کردن برخی باورها را به عهده گرفتند به باور من زیباترین نمونه این آثار خطی آثار مصور در عثمانی زبطت و تواریخ و در صفوی احسن الكبار است که من نمونه که اینجا میخوام نشون بدم از این دو اثر انتخاب کردم از نیمه نخست قرن هفتم هجری به نمونه های از مینیاتور حضرت علی در آثار خطی بر میخوریم اولین نمونه هایی که ما از امام علی داریم نگاره امام علی داریم مربوط به قرن سیزده است سزده میلادی هفته هجری است منیاتورهای حضرت علی که در نسخ خطی ادبی و تاریخی دیده میشوند پیشتر توسط دو محقق پژوهشگر ترک بررسی شدند من هیچ چیز پژوهشگر غربی یا ایرانی عرب ندیدم که اینا رو تقسیم کرده تصنیف کرده باشه تقسیم بندی کرده باشه فقط این دو خانمی که من اسمیشونام نام, نام میبرم سعی کردند که این تصاویر رو ای آیکونوئولوژی ای رو به وجود بیاورند و تقسیم کنند که اینا مربوط به چه چی چیزهایی هستند ولی هر دو اول سر سرپل باغجو که استاد دانشگاه به هم هستش مربوط به فقط متون رو تقسیم کرد گفتش که اونایی که در متون ادبی هستند و اونهایی که در متون تاریخی هستند یعنی yani یک تاکسیم بندی موضوعی خوب انجام نداد بعد از اون طلبه شاکر خانم صنبول رساله دکترا در این باره نوشت بر متمرکز بر خاوران نامه اونجا هم نظریه اهل سنت و تشیع رو به هم قطی کرد و به نتجهی نرسید به نظر من که من در مقاله هم ایراده هایی که داشتم نوشتم مقاله من هم در این کتاب چاپ شد با این فعالیت هایی که در این زمینه انجام شد بررسی ابعاد مختلف تصویر خلیفه علی و امام علی از نظر شمایل نگاری و اختلافات موجود در این مبحث انجام داده شد اما تفاوت تحقیقات پیشین به نگرش دینی مثبی حکمرانان و ادعاهای مشروعیت آنها هیچ توجه نکرده بودند من در این کارم خواستم که این تصاویر رو با زمینه هایی که در دورانی که اونها خلق شدند چی ارتباطی داشت از نظر کلامی، سیاسی، ایدئولوژیک، بیشتر تصنیف من، تقسیم بندی من برای مبناه بود برای مشخص کردن این تقسیم بندی من در مقالم که ترک ها بیشتر با منابع اهل سنت آج نیدارم و منابی شیع رو نمیدونن دو تصور امام علی رو حضرت علی رو جدا کردم اول و نشون دادم که در اهل سنت امام حضرت علی کی هستش و در شیعه تشیع امام علی کی هستش اینا رو من جودا کردم و نشون دادم که از یک زندگی که من نابی نقل شده دو شخصیت جودا چطور به وجود آمده است که به بن نظرم اینجا دیگه با محضر اساتیت این بحثا خیلی تکراری میشه ولی بعضی یکم اشاره میکنم دلیل اصلی جدای اهل سنت و شیعان امامی تصور حضرت علی است که در سنت الهیات تیولوژی هر دو مذهب با یکدیگر متفاوت بوده و نظریه خلافت و امامت در مورد او جای بحث بسیار دارد در الهیات اهل سنت تلاش می شود تا جایگاه حضرت علی به عنوان یک خلیفه نشان داده شود. اما شیعیان امامی ویرا به عنوان امام میپذیرند و همین باعث شده که روایت های تاریخی یکسان به گونه متفاوت تفسیر شده و در نتیجه دو تصور متفاوت در مورود حضرت علی یکی به عنوان خلیفه سنیها و یکی به عنوان شیعیان امام شعیان پدید آورد آثار مصوری که پس از قرن هفتم هجری با حمایت حامیهای مختلف پدید آمدند نیز بیش از هر چیز نماینگر این دو تصویر این دو تصور هستند یعنی yani تصور حضرت علی به عنوان خلیفه و امام حضرت علی در دیدگاه اهل سنت از نخستین مسلمانان نه نخستین یکی از نخستین مسلمانان و صحابی صادق بوده که به عنوان داماد حضرت پیامبر از اعضای اهل بیت به حساب می آید و یکی از ده قریشی هستش که بشارت بهشت به آنها داده شده است عشری مبشره و چهارمین خلیفه خلیفه راشیدی است که بنابرای تعریف پیامبر در راه راست قرار دارند و در راه حق قدم برمی دارند و به کمال می رسند. او که توسط حضرت پیامبر مورد تعلیم قرار گرفته بود با جسارتی که از خود در جنگ ها نشان داده و دانش خود نسبت به اغلب از, صحابی، از صحابه جایگاه متفاوت داشته است حضرت تعالی همانند زمانی که پیامبر در قید حیات بود پس از مرگ ایشان نیست همراه همراه با امت با معنای جماعت اینجا امت مسلمان حرکت کرده و با بیعت با سه خلیفه سلف خود هماهنگ با آنها فعالیت کرده است دلیل بیان شدن مکرر نام ایشان در مناقشه های سیاسی نیز به خاطر به مجادله برخواستن برخی فرقه های شیعی به نام وی و فرزندانش است نه از خود از این رو درمیان خلفای راشدین خلیفه هایی که مناقشات سیاسی و حقوقی بس حقوقی بسیاری در خصوص مشروعیت خلیفه وجود دارد حضرت علی است با این حال که این امتیازاتی که داشت حضرت علی بازم در نظر اونها مورد بحث هستش که آیا که از خلفای راشدین بود یا نبود تا دوره احمد بن همبد شعیان امامی حضرت علی را در دو جایگاه مختلف قرار در نظر می گیرند ولی و وسی و یا امام در الهیات شعیان حضرت علی ورای تاریخ در عالم متفیزیک صاحب ولایت و در تاریخ یعنی در دنیا صاحب وسایت و امامت است بر اساس اطلاعات ذکر شده در حدیث نور که در آثار شیعی خیلی به انواع مختلفی روایت شده است به حضرت علی همراه حضرت پیامبر و رای تاریخ از سوی خداوند ولایت بخشیده شده است یعنی به بیان دیگر قدرت و اختیار داده شده شده است و ولایت حضرت پیامبر در تاریخ به شکل نبوت و ولایت حضرت علی پس از درگذشت پیامبر به شکل وسایت و امامت ظهور کرده است دلیل این شریعتی است که میخواهد اجرای قوانین الهی را تضمین کرده تا بتواند اشخاص و ملت را به سطح مطلوب کمال برساند از آنجا که به عقیده شیعیان این هدف تنها به وسیله اطاعت از حجتی که از سوی خداوند ولایت به وی اعطا شده است ممکن است وجود امامی که پس از نبوت امن اجرای اراده خداوند بر زمین باشد ضروری می باشد مقدمه داره اینا من اول از خلیفه شروع می خلیفه علی و می در این باره ست تصویر نشون بدم که یکیش مربوط به خود چیست امام علی دوتاش و ان دو تاشم اون دوتاش هم یکیش هم اون تصویر هستش با این می دونم که این مقدمات برای شما خیلی تکراری بود اما در ترکیه که هیچ چی بلد نیستم به ویژه مبرخ هنر تاریخ دانان و هنر هیچ در این باره نمی دونند یه چیزی جالیبی بود جدیدی بود در بخش از این، از هم من می به شمایل گیرایی نگاری آیکیونولوژی شمایل نگاری میشید درسته؟ شمایل نگاری تصویر حضرت علی به عنوان یک خلیفه در کتاب زبطت و تواریخ که در پایان قرن هم تصویر پردازی شده نشون بدهم اما اول درباره باره اهمیت این کتاب چرا در این کتاب این چنین نگاره وجود دارد اینو مشخص کنیم ایکنوگرافی شمایل این کتابی که زبتت و اول یک تومار بود توماریست بیش از شیش متر که هنوز هم در موزی توپکاپی نگهداری می شود که من یک بار توانست من رو ببینم بعد در دوره سلیمان سلیمان قانونی این به شکلی کتاب در درآورده شد به قول باکتز تزجان مورخ ترک در آمریکا در آن زمان این کتاب چاپ شد این تومار به چاپ رسید و هی ادای چیز ارتباط مستقیم پیوند محکم با ادعای حاکمیت عثمانی ها دارد اول این چی بود این عثمانی ها چه ادامی کردن باید اینو بفهمیم که تا اون نگاره برای ما مشخص چی چی میخواد بگه نماد چی چیزی هستش ادتاهای پادشاهان و عثمانی برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار سیاسی و حقوق،, حقوق حکمرانی همسو با دیگر گفتارهای خاندان برای برآورده کردن اهداف سیاسی بر اساس آیدیال قضا مطرح شده بود که شاه اسماعیل هم اولین بار که کارش رو شروع کرد در شیرش گفت به قاضی ها صدا کرده بود ای قاضیان آخیان و عبدالان بیایید شاه پیدا شد سجده کنید شیر ترکیش اینطور بود عثمانی هم هم اینطور بود قضا به معنای اینکه یعنی دا با دارالکفر مسیحی ها که گوزانسی ها بودند رومی ها بودند اون با اونها می‌جنگیدند و دارالکفر می رو دارالاسلام می‌کردند دارالحرب رو دارالاسلام می‌کردند از اواسط قرن نهم هجری جریانات قزلباش یا شیعی بیشتر از هر جریان دیگری ادعای که خاندان عثمانی در پی مشروع کردن خود بود تهدید می‌کرد انگامی که قزلباش صفوی قزلباش یا شیعی در 1501 در ایران دولت تشکیل داده و شیعه امامی به عنوان مسبه رسمی خود برگزیدند اختلافات میان عثمانی و صفوی بالا گرفت و صفوی ها برای مشروع کردن صفوی ها برای مشروع کردن قضایی که در مقابل آنها صورت خواهد گرفت به عنوان رافضی خنده شده و از دائره اسلام بیرون رانده شدند که در اولین فتوا هم در باری باشا رافزه گفته شد پس از آن که برای قضا مشروعیت دینی ایجاد شد سلطان سلیم دوم نخست صفوی ها رو در چالدران داد سپس مملوکی ها که در نظر عثمانی ها متفق سنی صفوی ها بودند و جلوی قضا را می گرفتند از میان برداشته شد و سلیم به عنوان خادم مکه و مدینه یعنی خادم الحرمین شریفین این عنوان را از آن خود کرد این گونه پادشاه عثمانی ادعا کرده بود که به عنوان پادشاه مدافی اعتقاد درست یعنی سنی قوی ترین حکمران است در اون زمان هنوز بحث خلافت نبود سلیم نگفته بود که من خلیفه هم میگفت که من خادم حرمین شریفین هستم در ابتدار قرن ده هجری ادامه جنگ با صفویان شیعی و شروع مجادله با اروپای مسیحی پادشاهان عثمانی را برانداشت که فراتر از مشروعیت قضا و محافظت از اندیشه سنی دیدگاه های خود را با نظریه‌ی سیاسی که به مراجع مذهبی قابل اعتماد بازمیگشت تقویت کنند سلیمان اول که در این زمان سلطان شده بود از سال 1520 به بعد در ابتدای حکومتش به عنوان بزرگترین حاکم سنی و خدمتگذار مکه و مدینه عنوان خلیفه بزرگ را و خلافت تمام مسلمین جهان را تقاضا کرده بود دیگه میخواست خلیفه کبرای امت اسلامی باشد این تقاضای سلطان را شیخ الاسلام ابو سعود افندی به جای آورده بود ابو سعود عنوان افتخاری که به پادشاه بخشیده بود را به عنوان وسیله برای مشروعیت بخشیدن به خلافت عثمانی استفاده کرده و با ذکر این عنوان در قانون ها، حکم فرمان‌ها، کتاب‌های خطی و کتیبه‌ها که پادشاهان عثمانی وارث خلافت بزرگ هستند که از پدر به پسر منتقل می شود و پادشاه عثمان وارث خلفای راشدین است که خلافت را مستقیمن از پیامبر به ارث بردند هنوز هم برخی از این کتیبه ها در توپکفه و اطراف اون دیده می شود چند فعالیت های ابسود برای پای ریزی خلافت عثمانی بر اساس حقوق سنی نیمه کار مانده ماند، اما پس پس از سلطان, سلطان سلیمان عنوان خلیفه جهان و خلیفه مسلمین به اناوین پادشاهان عثمانی اضافه شد یعنی این نتونست پایگذاری کنه علمیش بکنه ابو سود. اما بعد از اون دیگه رسمند برای هر پادشاه عثمانی خلیفه گفته می شد. در نتیجه سلاطین عثمانی که همیشه با علقه به قاضی شنخته می با گسترده کردن مفهوم و قضا معنای جدید به خلافت سنی بخشیدند ادعای حاکم، حق حاکمیت جهانی که به نظری خلافت عثمانی باز میگردد پس از پسگیری بغداد به دست سلیمان قانونی از دست صفویان که پیشتر پایتخت حکومت عباسی بود بر سر زبان ها افتاد و تاریخ نویستان شروع به مطرح, کرد، مطرح کردن آن کردند. این دوران دقیقا همان دورانی است که سلیمان شروع به استفاده عنوان خلیفه خداوند خلیفه الله را میکند و ناسوه مطرح در کتاب و مجموعات و تواریخ بر اساس که بر اساس تاریخ تبری نوشته بود اینا ما اینو الان منازل نامه میگیم یا بیان منازل سفر عراقی میگیم در واقع این جامع مجموعات تواریخ بود که فقط تونس جلد اولش رو بنویسم که همون بیان هستش به بیا بی منازل نامه هستش و نخستی نمونه در دوره خود به حساب می آمد سعی کرد تا نشان دهد که خلافت عثمانی وارث مشروع خلافت آبادی بوده است حتی اونجا که شاید کتاب رو دیدید من چند بار آوردم ایران، توپوگرافیایی که اونجا کشیده شده، اون نهرها زمین، بناها، ساختمانها، مطرحش میخواست اینا را به عنوان خاک قلمرو اسلامی نشون بدهد، اле که همین طور چیز به خاطر هنر دوستی این کارو نکرد که در این باره هم یک مقاله می نویسم من. در حوالی سال 1550 سلیمان خواست تا مستقیما نحوه این اکاس مکتوب کردن ایدئولوژی تاریخی و تصویر امپراتوری را کنترل کند. برای همین شغل به نام تاریخ‌نویسی یا شاهنامه نویسی بگیم بهتر شاهنامه‌چی در دربار خود ایجاد کرد سلیمان در تاریخ رسمی که مورخان دربار همون شهنامجی ها می نه تنها با موفق موفق موفق موفق موفقیت های نظامی خود بلکه به عنوان یک قاضی و مدافع حقوق نیست معرفی شده و با فعالیت های خود سعی می کرد تا درجه والاتر کسب کرده و ادعای شیخ الاسلام ابو سعود مبنی بر حاکمیت جهان را با قوانینی که وزمی کرد قانونی اسمش رو از اینجا گرفت به اثبات رسانده و در متون تاریخی این گونه منعکس کند الان امیدیم به کتاب چیز ا تواریخ نشان نیست زبطت و تواریخم اینطور که گفتم قبلا یک تمار بود و این تمار رو که تمام ادهای اثمانی، حاکمیت عثمانی در آن مکتوب شده بود دو تا مبرخ ایرانی در واقع نوشتن یکی عارفی که از ایران مهاجرت کرده بود به چیز عثمانی و یکی افلاتون عارفی شروع کرده بود افلاتون به پایان رساند. و در سال 1596 سید لوکمان اینو منتشر کرد و مصور نقاشیش کرد. <coughs> از تام در رابطه و تواریخ هم مثل تومار تمام ادعایی که عثمانی ها از قرن 14 میلادی به بعد داشتند برای دفاع از حاکمیت خودشون حق حاکمیت خودشون تکرار شد و خلیفه به عنوان خلیفه پادشاه به عنوان خلیفه مسلمین معرفی شد جات بود باه، باه. دو چه تو تواریخ رو سید لکمان که خودش هم ایرانی هستش در واقع در سال 1580 شروع کرد و هشتاد تمامش کرد و به سلطان مراد سووم تقدیم کرد این کتاب دو قسمت داره. قسمت اول کزموگرافی هستش همون که جنت چگونه خلق شد جهنم چی هستش از اینا بحث میکنه. بحث دوم قسمت دوم از آدم تا سلطان مراد سووم تاریخ پیامبران و و خلفه هستش که از نظر اهل سنت اینا رو البته بررسی می کند در تبدیل شدن این کتاب تومار به کتاب همون چیزی که نظریه که پادشاه خلیفه پیامبر است این رو می خواستن اجرائی یعنی yani هدف اصلیشون این بود زبط تطراریخ از انجایی که شجر نامی پادشاهان اثمانی را به پیامبران و شخصیت تاریخی مهم متصل می کند به نوع ای یک سلسله نامه هست به همین دلیل دلبرخ جاهای مناسب شخصیت دینی و تاریخی برای تقویت پیوند بصریشان با پورتره های به تصویر کشیده شدند. به چند موضوع در این سلسله نامه تاکیت تأکید جدی می شود. نخستینی این ها این است که پیامبران و خلفای آنها از سوی پروردگار برگزیده شدند. دومین این است که افراد برگزیده وظیفه دارند تا انسانها را به راه راست هدایت کرده و ایمان را در دل آنها زنده کنند. جا جایگاه برگزیدگان کن در میناتورها اگر تصویر متعلق به پیامبران باشد با نشان دادن معجزات و اگر خلیفه باشد با نشان دادن نشانه خلافت مشخص می شود زبطت و تواریخ بیشتر از زوایای مختلف مورود بررسی شده بود من از نتیجه های آنها هم استفاده کردم همون که پیش درم گفتم سلطان سلیمان در اول قرن ده تحت تأثیر اختلاف صف عثمانی و صفوی سعی کرد تا ادعای خلافت جهانی خود را در چارچوب نظری خلافت سنی نشان دهد پس از معرفی سلطان به عنوان خلیفه پروژه پایگزاری امپراتوری که در قرن دهم ده شروع شده و با شدت و کسب موفقیت در قرن یزده نیز ادامه یافت این پروژه که در تفریق مذهبی اینکه که تفریق یا جودایی مذهبی در اروپا در قرن 16 میلادی خیلی یک آدیسه مهم بود که تاریخ نگاران همیشه اینو نادیده گرفتن برای تاریخ اسلامی همون قرن 16 برای هم برای ایران هم برای عثمانی یک دوره جودایی یا تفریق مذهبی بود که این کتاب هم در این دوران با این انگیزه نوشته شد و همون قرنه 16 هم دورانی بود که یک محقق پژوهشگر هشگر ماجره اینو خوب نشونداد کرستیک یا خانم کرستیک جماعت های متون به وجود اومده بودند در تمام جهان قسطخان ها یا مددهان یا نقالان که ایر در ایران هم خیلی فعالیت داشتند برای تشویی کردن مردم ایران مواظف بودند اصلا بگم؟ تشویک می شدند که بران این کار رو بکنند و مطورنی برای این ها آماده می که از طرف پادی پادشاهان هم حمایت می شدند که قا... مثلا اون یزیجزاده زاده ها تمام آثاری که به وجود آوردند و امید که اونا با دربار ارتباط مستقیم داشتند و ضبطت و یکی از این متونی بود که برای نظم بخشی که این برای فهمیدن تاریخ عثمانی خیلی مهم هستش نظام بخشی نظام عالم که عثمانی ها اینو داشتن یعنی دیسپلین کرده مردم و مردم عثمانی اولا و بعد تمام اروپا و تمام جهان برای نظام بخشی دربار نوشته و تصویر پردازی شده بود <تصفح> اندازه ای ابعاد بزرگی این اثر رداد و تارریخ هم این ادعا رو هم تصدیق می کند. که یک برگش اندازه برگش 61.7 و, و سانتی متر طولش ارزش هم چه یک سانتی متر هستش. این نشان می دهد که، این متن دربار برای شهزاده هایی که آینده دولت عثمانی در دستان ها بود خانده و نشان داده می شود. من خودم که اون نسخه رو دیدم واقعا خیلی بزرگ هستش تصویرهایش از چند متره هم دیده می شود بالا تقریبا اگر این فرضمون رو درست قبول کنیم نشان میدهد که اثر ابزار یا مفسر داشته که متن و مینیاتورهایشون منتقل میکرده شخصی که متن را میخانده و مینیاتورها رو نشان میداده و یک جماعتی وجود داشته که اینارو اندادهها رو میگرفتند و تو ذهنشون می میسپردن. درذوبت تو تاریخ تمام پیامبران با یک موجزه نشان داده می شوند نباست که به پیامبر اسلام میرسد یک با یک نگارهی میراج رو رو می شوند. که این در اولین بار در تاریخ اسلام در نسخه خطی در یک نگارهی میراج شمایل نگاری شمایل نگاری معمول اجرا شود و یک چیز جدیدی کاملا جدیدی به وجود میآید که در این نگاره ما بینیم در این نگاره پیامبر در مسجدی نشسته است که از بالا ملائکه برای بردنشون به معراج اومده اند در پشت سرشان استاد است دو پسر یکی کناره پیامبر نشسته اون یکی قرمزی لباسه پوشیده امام حسین است و اون یکی که سبز پوشیده امام حسن استش و امام علی در این نقاره در مقابل پیامبر و پسرانش قرار گرفته که حاله اون به اون بزرگی امام علی رو در بر نمی گیرد این خود چیز تصویر پیامبر در اینجا خیلی اهمیت دارد ولی من میخوام بیشتر بر تصویر امام علی متمرکز شم <coughs> اینجا امام علی رو بدون حاله و بدون لباس سبز بینیم. این دو تا نشون میده حتی امامالی در اینجا از از ویتش تا از اهل بیت بودنش خارج شده و لباس عادی به عنوان یک صحابی صادق نشان داده می‌شود. البته زمانی که لیسایت لکمان این نقاشی رو می کشید. از نگاره های میعراجی که توسط صفوی ها تهیه شده بود و در تمام ویژه در متون ادبی قرار داشتند و به دست عثمانی ها و کشورهای دیگه هم میرسید بیشتر در نزام خمسه نظامی و اونی که خمسه دهلوی و آثار سعدی دیده میشد است. به آن نگاره برای اینکه یک نگاره معمولی چطور بود یه کم این نگاره معمولی من نمیخوام این سن. یک نگاره معمولی میراچ که از قرن سیزده به بعد میکشیدن این بود پیامبر رو براق ملائک اطرافش رو گرفتن داره به طرف سما اروج میکنه. بعد اون نگارهی که صفوی ها تغییر دادند و یک نماد شیر بهش اضافه کردند. همین شد بازم پیامبر رو براق نشسته به طرف سماء می رود اطرافش رو هم ملائکه گرفته ولی اونجا یک نماد تصویری شیر می بینیم این شیر نماد امام علی هستش در نگاره های صفویی که برگرفته از دستانی که شاه اسماعیل در اشعارشونو تعریف کرده بنابراین داستان پیامبر اکرام موقعی که میرفتن رفتن می یا اینکه برمیگشتن چون چند روایت داره. با یک شیر قرقان روبرو می شود و می ازش. از جبرائل از می پرسی که این کیست و چی میخواد؟ جبریل بهش میگی که شما انگوشتراتون رو بهش بدید ساکت میشه و از راهتون، راه رو برایتون باز میکنه پیامبر که خاتم رو در میاری به دهان شیر میاندازد شیر ساکت شده راه رو باز میکنه پیامبر هم به روایت به صدرت المنتقه میرسه دمی, دمی داری صدرت المنتقه نشسته این شیر به روایت دیگر به زمین میرسه به دنیا بر می یا این یک ای ای ای ای قم سبز می بینی وارد اون این برگیرفته از روایات به نظر من برگیرفته از روایات شیعی هستش که روایات میراج بر ولایت امام علی اونجا استوار هستش. شاهی اسماعیلشون یک شیعی به نظرم حالیه خورده قالی بود اون روایت رو این روایت ها رو یه جور تفسیر کرد که اون قزل ها با عقیده قزل باش ها که به نظرم از اون هم خیلی چیز یاد گرفت تطبیق دهد. اولین نمونه این نگاره هم در دوره شاه اسماعیل در تبریز نقاشی شد. که این را رایشانی در مقالهش نشان داد آثمانی ها که از این خبر داشتند و پوستره من الان دارم درباره این نگاره ها کار میکنم و اون اندیشه ولایی که در این نگاره هستش و اسماعیل به خودش نسبت میداد اینا را بررسی میکنم با اون اندیشه صفوی ها خیلی آشنا بودن چون ما میدونیم که در همون زمان آثار مصور صفهوی به دست آثمانی هم میرسید خود صفوی ها بهشون اهدا میکردن یعنی خودشون چیز که سلیم که رفته بود تبریز کتاب اسماعیل ای را آورده بود استانبول اونجا میدیدن و با این نگاره ی میعراج تواریخ به آن جواب دادند در تصویر بعدی زبتت و تواریخ چهار خلیفه رو ما می بینیم. که در بالا ابو بکر و عمر و در پایین امام علی و عثمان نشستند. هر کدومشون با در سحنه از دربار نشان داده می شوند و با هر کدامشون بر چه سم شما اینجوره با در حالت شاه نشستند، بال، چهار زاهد نشاستند. در پورتری خلفای راشیدین، این اسم این نگاره هم پورتری خلفای راشیدین هستش ابوبکر و عمر در بالا و امام و عثمان در قسمت پایین به جز عمر در زیر طاق معلقی نشسته و در پشت سریشان یک غلام وجود دارد عمر یک شمشیر و ابوبکر یک دستمال بر دست دارد این شمشیر و دستمالی که دو خلیفه در دست دارند نماد سلطنت است قنبر قلام و فادر حضرت علی نیست زلفقار شمشیر دوتیغه را حمل میکند عمر عثمان هیچ شیعه خاصی را با خود به همراه ندارد هرچه هر خلیفه نیست بر زمین مثل یک سلطان نشستند میتوان چنین برداشت کرد که سید لقمان با قرار دادن نمات های سلطنت دو خلیفه نخست را بالا علا ابو بکر و عثمان را در راهیگاه متفاوت دا از دو خلیفه پسین قرار داد است. شاید نیز از این تاریخ است تا توجه به نقش برجسته آنها در تاریخ خلافت هویت شیخین بودن دو خلیفه رو نشان دهد. در پرت حضرت علی ریدای سبز برتن دارد و بر سر مانند دیگر خلیفه ها ایم بر سر، امامی سفید دارد که دیار خلفا هم همین این رو دارد نشانه سیادت ازش گرفته است که در بیشتر نگاره های و صفوی ما با امامی سبزی امالی رو میبینیم و اینجا ریدایی که امامالی دارد به رنگ سبز آیا نشان سیادت از یا نه؟ قابل تشخیص نیست من هرچی در بارش تحقیق کردم هیچ نشانه سرنخی پیدا نکردم که مثلا بتونم بگم اینجا این قبای سبز نشانه سیادت است در پر... نگاره بعدی که با نگاره میراج و با پورتری خلفای راشدین خیلی ارتباط دارد نگاره یازده ام است این نگاره گهگاهی در سایت های ایرانی رو من میبینم و با عنوان محبت عثمانی ها به اهل بیت ازش خیلی تعریف می شود ولی من که اینو بررسی کردم این یکشه این دومشه در مقابل هم قرار گرفتن اینا در نسخه در پورتری نخست اینه نخستش امام حسن امام حسین در بالا پایین امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسا کازم به تصویر کشیده اند و در پورتری دوم در قسمت بالای پورتری دوم امام رضا امام محمد جوات امام حادی و در قسمت پایین امام حسن اسکری و امام مهدی دیده می شود و هر هر همیشون بر سر امامیه سبزی که نشانه استیادت است دارد به عقیده من پورتری یازده امام یکی از مهمترین تصاویر تلقینی تلقینی موجود در و تواریخ است. تصاویر تلقینی یک مفهومی هستش که پیتر بورکه که رو تصاویرها و افیشها اکسها کار میکند و بحثیشون این هستش که آیا ما میتوانیم از تصاویر چی اکس بشه چی منیتر بشه و اسناد به عنوان سند تاریخی استفاده کنیم یا نه این واجه رو این مفهوم رو به کار می برد که برخی از این اکسانیگاره ها تابلوهایی که در تاریخ داشتیم تلقینی بودند یعنی یه چیزی رو می به مخطب یاد بدهند این دو نیگاره به نظرم ادعای حکومتی جهانی خاندان عثمانی رو تقویت می کند. در متن اثر که سلاطین عثمانی را به عنوان وارث خلافت اسلامی به تصویر می‌کشند، امامان شیعه همچون علما به تصویر کشیده شدند. و در مینیاتور با مزین کردن اطرافشان با کتاب‌ها به شخصیت عالم بودنشان، اینجا کتاب‌ها رو می‌بینید، عالم بودنشان تأکید شده است. یا یعنی اینکه یه احتمال دیگه هم هستش که بر صوفی شخص صوفی بودنشون که در سلسله های صوفیه هم از قرن نهم به بعد اگه اشتباه نکنم اسامی ایم رو ما میبینیم در انتقال خلافت از پیامبر به پادشاه عثمانی یا با عنوان عالم که برای در نظریه خلافت اهل سنت جایگاه خاصی دارن علماء و یا به عنوان صوفی شیخ صوفی نقش ایفا می کنند. این تصویر تمام ادعای صفویه رو خراب می کند به ویژه تصویر امام زمانی که اینجا ما می بینیم. در هر زیر هر تصویر اسلامی هم نوشته است که اینجا خونده نمی شود اینجا هم نوشته امام مهدی علیه رضی الله عنه نوشته با احزار امام مهدی تمام ادعایی که صفویه داشتند بر اینکه ما نائب امام هستیم یا اینکه مدافع نائب امام یعنی فقیه یا مرجه هستیم را از بین میبرد. یک تزازل ایجاد می کند از که تمام ادعای صفویه از بین می رود. و با جوداسازی امامان شیعه از هویت امامت خود و نشان دادن آنها به عنوان شخصیت های عالم در تاریخ سنی، و همچنین سی در بی اعتبار کردن باورهای صفوی شیعه و زیر سوال بردن مشروعیت آنها این تصویرها به کار برده می شود بعد از این میخوام درباره ادعای صفویه و ارتباطشون با نگاره های قدیر و صحبت کنم که موضوع قدیر و برای شما آشکار است نمیخوام تکرار کنم و اشاره به آن بکنم چون هرچی اینجا میبینیم برای شما معنی دارد منیتور قدر خوم در نگاره های در نسخه مسور صفویه ویه چهار نسخه دیده میشود که نسخهی مصوره از چیز صفوی ما نداریم نسبت به اون تعدادی که در دست است اینا زیاد شمورده می شود ارتباط مستقیم با ادهای مشروعیت حاکمیت صفویان دارد اینها از زمان تهماسب شاه شه که دیار از باورهای قزلباشی دست برداشته بود و توبه کرده بود به طرف تشعی گرایش کرده بود به وجود میعاید و برای شاهان صفوی و شهزاده ها تهیه میشوند که این نسخه تا اونجا که یادم هست برای مزافعش والی خورستان بود نه؟ درسته؟ بالا این در موزه چستربتی هسته شلن متاسفانه هیچ کدام از این نسخ مصور صفوی در ایران نیست تقریبا همش رفته اروپا و ترکیه مینیاتور هایی که در دوران صفوی خلق می شدند، ابزار برای نشان دادن بابرهای شاهان صفوی به اصلی تر خود یعنی پادشاهان عثمانی بود و منیاتور ها بر باور شیعه به مشروعیت صفویان نیز رابط داشتند در نتیجه با نادیده گرفتن نظر سیاسی شیعی یا صفوی که پادشاهان صفوی اساس مشروعیت خود میدانستند در که این موضوع که برای چی تصویر حضرت علی در هنر مینیاتور صفوی تا این حد استفاده می شود غیر ممکنه است حتی اون که در دوره صفوی صورت پیامبر و امام علی و ایمه ای ای دیگر پوشانده شد پژوهشگران غربی ادعای عجیبی دارند که با یکی دانشن پیامبر یا امام با شاه این ابهام را ایجاد میکرد که بیننده اونجا شاه رو میبینه یا پیامبر رو یا امام رو این هم به مشروعیت صفوی ها کمک می کرد من هم تا اندازه این ادتار قبول دارم از همین رو برای فهم درست فهمیدن این آثار پیش از تزیه و تحلیل شمایل نگاری دومینیاتوری که من از یکی رو از فعلنامه یکی رو از احسن بار انتخاب کردم یک خلاصه درباره ادعای مشروعیت صفویان را من می‌خوام ارائه بدم، بیان کنم. سفیان صفوی بعد از دوره شیخ جنید به عکس هویت شیعه وارد میدان سیاست شدند. آنها در دوره شیخ هایدار با استفاده از عنوان قزلباش در ایران و آناتولی گسترش یافته و در نتیجه در سال از سوی شاه اسماعیل اول به هویت دولتی دست یافتند شاه اسماعیل بلا فاصله پس از روی کرامدن شیعه امامیه رو به عنوان مثبی رسمی ایران معرفی کرد و سرآغاز اختلافات مذهبی هم در ایران با این اقدام ایشون وی شروع شد اسماعیل تا زمانی که دولت خود را پای گذاشت صاحب ادعای مشروع سیاسی و دینی دینیش را به افراد دیگر می قبولند از لحظ سیاسی و این باوره داشت که اطلافی که اجدادش با خاندان اکویونو داشت این یک حق حاکمیت است برایش ولی بیشتر از این بر اعتقاد باورهای قزلباشی تکیه می کرد که به نظر آنها ایشون یک مرشدی کامل سید و نائب امام بود این هم بحث شده که آیا خود اسماعیل خودش نائب می یا نه بازی هستش اینجا ولی تا ما اینو قطعا می دونیم که اگر هم چن ادای نداشت قزلباشها اونو به عنوان مهدی یا نائب مهدی قبول داشتن اینم اشونم از, از این استفاده می کرد شاید اسمايل اشعار ترکیش که من خوندم این ادای رو هم ثابت می کنی yani دیگه از ادعا بودنش می گذاریم و بهنتیم می که این درست استش بعد مدت سرکر آمدن شاه اسماعیل یه ادعای قدیم شاهنشاهی ایرانی رو هم ایشون مطرح میکنه بر سه چیز تکیه میکنه وارث اقویونلو وارث شاهان قدیم ایران و مشهد کامل قزلباش ها در واقع تمام امتی اسلامی <تصفح> پس از اسماعیل شاه, س... شاه تحمس بلا فاصله بعد سرکوب سورش های, های قزلباش که با اونه خیلی درگیر شده بود از باورهای قزلباشی دوری جسته و عنوان نائیبی خود را رد می کند ته ماستب که میان عنوان سیدی و مفهوم پادشاه عادل در نظریه سیاسی شیعه پیوند برقرار کرده بود خود را به عنوان یک سلطان معرفی کرد و برای جلب حمایت فقه های با صدور فرمان ویژه از محقق کرکی دعوت می کند به ایران کرکی از علمای اصولی بود و خودش را نائب امام می دونیست نائب ام البته میدونست و این حق رو برخود میداد که میتواند سلطان را به عنوان مدافع مثب حق مشروعیت ببخشد. این دو ارتباط این دو محقق که و شهطه ماسق بر ادهای صفویه افسوده شد و تقویت کرد بعد از این دیگه پس از تهماسب و کرکی دیگر فقها و شاهان صفوی این اتحاط را حفظ کردند و شاهان صفوی خود را با تیید بزرگترین فقهای دوران نائب امام مهدی دانسته و مشرویت دینی خود را بر پایه این اعتقاد استوار کرده بودند در عثمانی، عثمانی ها میتوانیستن با تاریخ های مصور و سلسله, سلسله نامه های مصور ادعای خود را بصری کنند تصویر بکشند اما صفهوی ها این امکان را نداشتند به خاطر اینکه به عیمه خودشون با عیمه نمیتونستن مستقی من ارتباط بدهند بنابراین یک روال متفاوت در آثار تاریخی پیش گرفتند پس از چکست چالدران با هدف تثبیت ادعای مشروعیت خود دست به تقویت نهاتای سنتی دربار خود زده و در تبریز با تأسیس کتاب دستور داد داده بود تا شهنامه فردوسی رو تصویر پردازی کنند این البته در زندگی و در وقتی که اون در قید حیات بود به پایان نرسید در دوره ته به پایان رسید این اهمیت این نسخه ای شهنامه این است که در اولی کتاب یک تصویر اومد است که الان پژوهشگران به آن کشتی شیعی میگویند در آن تصویر پیامبر با ایمنی شسته در یک کشتی که این کشتی نوه است و نجات کشتی نجات هستش مسافر اس می کند. دوره قائم بلال میشه؟ قرن چندم میشه؟ سه چهار. نه قائم بلال. خوب. کاندست چهون میشه؟ چهارم. در قرن روم همون که با کتاب اعلام کتاب اهل سنت یا کتاب اعتقاد قادری میگن بهش اعتقاد نامی قادری اینکه چهار خلیفه به ترتیب زمانی فضیلت دارند خب اینو اهل سنت قبول کرد همون دوران بود که این درگیر بین خودشون هم بودن متکلمین محدثین و اون مفسرین مثلا علمای سنی بین خودشون که بیشترشون همون کلام و فقه ها بود و متکلمین و فقه ها درگیری داشتند صوفیه بر اینا اضافه شد که دوره این اصل الله بیشتر ماینو مشخص سر،, سر شد این صوفیه اتفاقا بعد از دوره ایخانی قلبی دارن خور پاسل و جامعی. این ریشهش همون دوران هستش که ناصر الدین الله به عنوان چیست امامالی را به عنوان فتا معرفی کرد ولی شما اون نامش رو بخونید باز هم ارجا میده حتی اون ادهای عباسیش اونجا هست دست نکشید از اون اول پیامبر و بعد خلیفه بعد میگی عباسی که در سما یک ستاره هست خب اون دورانی که شما میفرماید من اون متونی که دیدم هیچ فرق میان چیز نداره ما تنها میتونم بگیم که امام علی در میان اهل سنت تنها در متون صوفی مورد بحث نشده که آیا خلیفه بوده یا نه آیا آدم خوب بوده یا نه یا آیا آدم متدینه بوده یا نه تو سلسله ها میاد برای مقابله با شیعه. که مردم نمیدونم اینو هیچ کس جواب نتون بده یک کلت کل میگن که کالت امام علی به وجود اومد ولی این از کجا به وجود اومد میان مردم این همه ای که به امام علی داشتن از کجا اومد ما نمی‌دونیم این چیزایی که شما میفرمایید صوفیه گفتند برای مهار کردن این ایتقاد مردم بود از طرف اولمای چیز حکما سنی بیشتر تقویت میشودند که اسمنیانی که از اونها بود من ندیدم تا حالا هست ولی هیچ تفاوت میان ابو بکر و علی من نمی‌بینم خب مثلا نتیجهش چی میشه؟ من میخوام بگم که اون ta'sir اون نگاه شما şemailha kayet çera yine این çuma ha, eee, eee, eee, که من در اول چرا eee, چیزو کردم؟ eee, eee, eee, eee, eee, سلیقه eee, حاکم مهمه هیچ اینا حاکم نشدم که صوفی ها. حاست مثلا یک تصویری که با این نگرشی که شما میگین خب ولی مسئله که به هروم ادبیات ادبیات موضوع این نگاه هم توش کرده درست توی اون نگارگری خامیش صورت ولی خود این منطقون خود ادبیاتی که تولید شده این نگاه میتونه مثلا یک چیز تاثیر فرامسنی داشته باشه. یک سوالی که در این زمین ما همیشه بذاری نمیرسه اینه یک سوالی که همیشه به نظرم میرسه اینه که شما گفتید نگاره های ترقینی است بذارد از یک طرف در... من میدونید که منر کتاب پردازی خیلی هنر گرانی بوده و در اختیار یا طبقه خاصی بوده یعنی این اصطاها هم دیدنش و هم ساختنیش ساختنش که خب خیلی هزینه برای بوده حتی دیدنش هم عموم مردم رو ببینن. ببینم چه فائدهی داشته که این هوند ترقینی توی اینا استفاده بشه یعنی چقدر جمع گستره تبدیقی داشته برای که خیلی خاصی میتونستن اینا رو ببینم برشقه این همه بیان نقاط مختلف و اینا رعایت کنند، دقت بکنند، ایدئولوژی سازی بکنند، تاریخ سازی بکنند، چقدر تأثیر می‌دهد؟ یعنی آیا این هزینه با اون نتیجه و همون فایده برابری داشته یا نه؟ اولان اینا برای چیز تعلیم ها بیشتر این نقاشی می‌شد، ولی این که آیا در جهان اسلام نگاره ها قبل از چاپو اینا مخصوص چیز بود پادشاهان و شهزاده ها بود یه نه مردم هیچ چیز نداشتن اینو من نمیدنم نه اینو نمیگم بله اینکه بله این نسخه های نفیس, نفیس. این رو نفیس؟ بله چون ما الان رو اینا معمولا صحبت کنیم بله. اون نسخه های تر که انقدر نکات قابل بررسی نداره اون یه چیز کلی توش تکرار باشه بله در برای درباری ها چرا اهمیت داشت اینا با لاله هایشون چی میخوندن؟ چیونو تماشا میکرد، نگاه میکرد؟ برای اولین مشکلات از دربار شروع میشد از بجهگی اینا را، البته این ادعا هستش ولی ما غیر از این ما نمیتونیم توضیح بدیم که به این انراضی رزخه درست کنن و آماده کنن به چی درد میخواد؟ حتما یه چیزی داشتی ما میدونیم که مثلا اون قرآن که خیلی خیلی بزرگه تو چیز نماز جماعت استفاده میکردن از اونه نه؟ نمیدونیم آره شاید شاید نمیدونیم هست این چیز بالا. مطال از قرآن که نمیخوندن ممکنم بخوند اینجا حالان هم هست این خوابیه محسوس خودشون بله بیم استفادهش یعنی این قدر استفاده قام نداشته بله اونا هم همینطور اما به اون بزرگی به چه درده میخورد؟ خب همین سواله من همینه آره. یعنی ما فقط هست میزنیم هنر یه چیزی هستش که شما اصلا نخ پیدا میکنید از اون میبا خب درست در میاد یا <تصفيق> اشتباه خطا آیا تاکیم برنات حوزه محصر فرهنگی و علمی بله بالا خب البته استثنا هم داریم و استثنااش اینی که من رو مقاطل امام حسین هم کار میکنم با نگاره هاشم در بغداد، در سالهای 1552 میلادی، همون دورانی که با صفهوی اینا خیلی رقیب بودن جنگ میکرد، اینا در بغداد متونه پیدا شد، مصور مقتل امام خب و مناقب نامه های همش مصور، خیلی هم زیاد این رشل ماشتاین اینا رو تو کتابش آورد فکر کنم پنجه شست نسخه است که تا حالا به امروز رسیده به دست ما رسیده همین سوال میکنن که اینا اینا رو چی کسی درست کرد؟ چی... برای چی کسی تهیه شد؟ سم... آمیه چی بود؟ آره آمیه چی بود؟ سفارش داده شد یا اینکه خود نقاشا نشستن یه چیزای تولید کردن و گذاشتن برای چیز نماییم به معارض فروش اینو که ما نومنش رو نداریم چنین چیزی رو داریم؟ در طرف ایستان؟ خیلی بعیده بله حتما یه چیزی داشتنی اینا یه صفحامی سف... داشتن من متون یه چیزی که اصانید اسا... توپکاپی رو که میدیدم اونجا مخلفات هست دیگر یکی از اونا میگه مثلا مخلفات؟ کسی که از اون پاشاها عزل میشد یکشته میشد که بیشتر پادشان میکشتی تمام انوالش مسادره, مسادره میشد اینو هم لیست می نوشتند از ابراهیم پاشا به توپکاپی اینا رسید خب اونا یکی گیرانبه ها بودن ارزش داشتن اونجا من دیدم که حسن پاشا یک مقدل حسین دارن خب حسن پاشا همون تاریخ هایی که اون مقتل های مصور به وجود اومد ایجاد شد خلق شد رفته بود بغداد بالا بالا. بله. من میگم که اون مقتل های مصور متونی بود برای سنی کردن حادثه کربلا در بغداد پخش میشد چون بغداد یه جایی بود که همه میرافتن اونجا در معرض دید بود دیگه همه علما میومدن تاجران میومدن خود مردم و می دیدن اینو خب یعنی تصویر از اون زمان تا حالا در جهان اسلام یک چیز تلقینی بود به نظرم تبلیغی, تبلیغی بود و من فکر نمی کنم که تمام تصاویر در میان این کتاب ها یه چیزهای دیگه هم داشتیم ما مثلا نسخه خیلی چیزی هستش که مثلا مثل اینکه یه بچه نقاشی کرده تصویرهای معمولی داریم, داریم, داریم, داریم. داریم مثلا از اینها نسخه داریم چقدر بودن اینها نمیتونیم تشخیص بدیم که آره تکیم این بودره یازده امام گفتید که خب برای سنو کنگر این امامان بالم بله، نیازی به یک تحول بزرگی به وجود اومد در عثمانی چرا؟ چون مردم عثمانی مثل طرفدارانه شاه اسمایل فکر میکردن همون هم باوری کنند داشتن این هم داشتن اولین چیزی که یعنی برمایه صوفی و صوفیانه سوفیان بله علاقه به امام علی و اینا اولین چیزی که اسمانی رو ناراحت کرد کچه های دست جمعی از ایران به چیز از اسمانی به ایران بود اول سلیم از این ناراحت شد گفت مالیات داره میره خب باید گفتش که با اینا باید جنگید جلوی اینا را گرفت برای باورهایشون نبود چون خودشون هم ممکن بود بایزد هم مثل اونا باور کرده باشه، ایتقاد داشته بشه چون بایزد ما میدونیم که در دوره بایزد دوم پدر سلیم سنی گری در عثمانی مشخص آشکار شد قبل از اون نبود همون قاضیانی که اسماعیل به اونا خیتاب میکنه پادشاهان عثمانی قبل از بیازید مثل اونا بودن اگه مسلا پدر از بیازید اگه زنده بود شاید پامی شود پیش شای اسماعیل همون ایتقاتی که اونا داشتن این هم داشتن بعد از اون دیگه گفتم که جوداسازیی مذهبی یا تفریق مذهبی نمیدونم فارسیش ام فارسی شمیشه. مذهبات جدا میشه یعنی yani دیگه ایران میشه ایران شیعی عثمانی میشه عثمانی سنی یکی در مقابل میشه عثمانی راجر ساوری میگه که مثلا سووری میگه شایسته راه شی دوازه ایما, شی دوازه امام رو مسئله رسمی کرد جوا, در جواب این سوال میگی چون میخواست که عثمانی ها به خاکش دست نزنن با به تعبیر من ها با نجس کردن اون خاک در ذهن عثمانی خب چون برای عثمانیش یه بودن رافضی بودن یه چیز زشته بود خب با کسیف کردن خاک عثمانی رو از خود دور نگه داشت عثماني دیگه به اون دست نزد. سوار چیز دیگه می یادم نیست ولی مضمونش همین دیگه. عثماني هم سنی شد. اسماعیل هم چیز حملنه‌کرد. سلیم رفت تا تبریز ولی برگش. نظر سف... به نظر سواری به نظر من عثمانی ها در مقابل صفوی ها اگه عثمانی ها از عثمانی که یک خرق قبل سفر بود وجود داشتن؟ نه اگه صفوی نبود عثمانی ها سنی میشدن یعنی اینقدر متعصب میشدن یا یعنی نه نمیشدن اینو میخوام بگم همون بلد سلطیانه ای که صفوی های که برن داشتن <تصفيق> حداقل مثلا یه پنجاه سال، ست سال دیگه ادامه پیدا میکرد این, این به اون حرف منو تایید نمیکنه یعنی این در نگاه به چایی ها دوازه از قبل میونه اهل سنت وجود داشته چون اتفاده یه سری متون سوفیانه قبل از دوری سرفری هم میبینیم مثل فصل خطاب خواج محمد پارسی و روزبهان خنجی توی کتابش یا تو خود مثلا فتول همه اوهیه داره اینا همه بعد از چهار خلیفه یه ذکر و ستایش هم از ده زمام هست خوب. و حتی بعد از اینو نمیتونیم ما تجلیه همین نوع نگاه بدونیم تا اینکه بخوایم بگیم عثمانی ها اومدن خیلی تلاش کردن که مثلا نه عثمانیانه نکردن اینو قبل از عثمانی ها بود عثمانی ها هم کردن نه عثمانی ها نکردن من میگم که از نهم نه و بعد اون که صوفیه با عنوان پایه سوم اهل سنت در کنار فقها ها و متکلمین قبول شد میدونید که اول با صوفیه خیلی درگیر بودن اینا متکلمین سنی و فقها ها بعد اون رو قبول کردن صوفیه رو اهل سنت برسته چیز پایه نشست کلام فقه و تصوف از اون زمان به بعد دیگه شروع شد سنی کردن ارزش های شی در مقابل مردم ها نه شاید تشیعی در هیچ جا قدرت نداشت یه چیز عجیبی اون کی بود؟ جوبری بود؟ عمری بود؟ یکی از اون سیعی ها میگی من در شرق آناتولیا گفتم که من تناسخ یافته میگین؟ یعنی امام حمالی در من حلول کرد خب می گفتم در را می همه به من احترام می خب این اعتقاد مردم چی بود ما همیشه با علما داریم علما در مقابل باور مردم موضی می گرفتن چون از طرف دربار موضح بودن نه همیشون بیشترشون خب وحدت وجود ابن عربی چی قد ارتباط داری با اعتقاد تناسخ یا اینو مثلا ما هیچ سوال کردیم ابن عربی یه دفعه اومد یک چیزی نظریه به وجود آورد هیچ ارتباط با مردم نداشت چرا اون دوره لپیدوس, لپیدوس اینو خوب بررسی کرده قدرش بیم تطبور اون آرای صوفیانه قدرش بحلت شهود ابن فارس هست قدرش یعنی یک یه سری مفهوم و دیدگاهی که الهی تصور پیدا کرده از فنا بودن وجودی بعد به بحث شروع میشه این اومده این تگ تق... دیگه آخرین تکامل و تطور این این فارسی مشکلی با این من راحاتگی <تصفيق> میتونستم بگم ببینید رو ببینید بخشی چیز <تصفيق> ابن عربیش شو خیلی مهمه ما فکر میکنیم که هر چیز یه چیز علما یه چیز گفتن مردم باور کردن نه که مردم باوری داشتند اونو تئوری سازی کردن براش که سنیش بکنن یعنی سنی کردن که اینجا معنی ندار شاید چیش بکنن اون چیزی که دربار میخواست بکنن تسمیتش بدن باده رسمیتش بدن یه اصلاحش کنن مهارش کنن از بینش ببرن از بین بردن بهترین راهش اینی که اونو در داخل چیز جواب بده خب این اسیمیلیشن اسمیله کاربنی دیگه شما اونو میگیرید در داخل خودتون از بین میبرید بله ما یاد تکینو خاطر بس تو ادامه بدید یا سوال جواب بشه سوال جواب بشه رو بله به نظرم <تصفيق> قدیر خودم گفتم چون نشانم دادم چیزو تركيا وإيران دوران صفويا، يعني مسألة كارخونة دو تكارخونة، مثلا إيجاد حالة غلو، يا الجامعة الإسلامية، وسياسية أثر وبالنسبة لها معنى حنفي نبودن هي استنمى أنا صوفي قريب وطبيعي بأمه أهل بيت ببسه وترى حنفيها مذهب حنفي جون حنفي عربي مام أبو حنيفة عربي نبودن يعني مقايسة ب إمام شافعي شافعي لأس قريش وهم عرب يعني أي من مصمومين هم عربا وعبين علت برأي إيجاد مش... إتبات مشهورية عنها جايد كيرج عربها مثلا إمام يعني خليفة سلطان مثلا كيف نظر شكرا <تصفيق> من خیلو چیز نشده هم تومان عربی بگی ترجمه کنم بهتر نیست؟ فی البجای اشبروکم على هادل ما قد رانتمونمون شو ترجمه بحث رائع و فی نظری القاصر ان کانت الفتره التاریخیه بین الصفویه و الاتمانیه بمثابة مصنع مصنع لترويج الثقافة الصوفية ومحاولة تحريق اللعب السياسي يعني أوروبا كان لها وجود قبل مجيء الصفوية كانت شركة الهند حركة اقتصادية وحركة تبشيرية كان من وراء ذلك فهم يؤثر يؤثرون الحركة الأوروبية تؤثر على الدولة الصفوية من جهة وعلى العثمانيين حتى تأثيرها في المجتمع يعني المجتمع الشيعي ليس بشكل مباشر يعني ما صار حول الأخبارية الأصولية أو الصوفية موقف أشريع الإمامية بشكل عام على الصوفية له أسباب ورواج <تصفحة> نعم. بعد نشوف كل كلمة شو باتي شو هاي خيالك بعد يعني كدوجي سافا بي. اندن دوره صفوی و عثمانی دو منازعات صفوی عثمانی ای هست که یک کاخنی برای ترویج تصرف در بین مسلمانان و در اختلاف ایجاد اختلاف میان مسلمان و ایشون نظر شده اینه که اینه که به اون زمان اروپایی‌ها فعال بودن شروع کرده بودن به اومدن به سمت شر و شرکت همیند از اون زمان همیند شهر اما این زمان تأثیر شدودشون دارن که دست اوروپاییان دارن اختلاف او باید تأثیر داشتن اختلاف باید تأثیر داشتن در ترمی که از دو تا هر دوتا هر مسافرین و هم عثمانی باید که این اختلاف ها رو بیونشون ایجاد کنن در زمان مجلسی مجلسی افرامی الآن بصاحب محام العنوار في زمانه حركة الهند في قمة نشاطها وأيضا الحركة التبشيرية والثقافة الوثنية وصلت إلى قصور الصفويين هذه التماثيل وكلها هذه الأشياء لها مدلول إضافة إلى التصاوير هذه الصور مربوطة بهذا الشيء میگه از طریق این فعالیت اروپایی که اون زمان به دربار عثمانی سفر میسته بود ها سری کالاها از جمله اجناس فرهنگی و خودشون رو دورن از جمع مدستن و اروپایی و حتی این تصاویر رو هم میتونیم بگیم این هم بلگو گرفته از هنر اروپایی است. نتیجه <تصفيق> وكانت محاولة سيد جمال الدين حسن الله بادي الإيراني أو الأفغاني أو الإسلامي <تصفيق> كلها معاني واحدة ولكن ربما هو لم يوفق يعني هو حاول ربما الناس لم يفهموا بشكل كافي العلماء ومات ولم يترك خلفه. الا بعض الشیلی مشروعي مادیان سد سد دام الله اما هم یه تلاش های کرد که اون تلاش هایی سرگالونی انجام داده ای خود برا خود موفق نشد و اون قرارم در قبلی هم شون ادامه داده کرد. با در زمان اص... صفویی بین اختلاف... اختلافات که بین صفویی و اسمانی بود اورپایی ها تحریک کردند یا نه این س... اولین سوال بود م... به نظرم تحریک نکردم اما استفاده کردن می که می اه... آدمیس بنام مورتون رو می فرزده ونیز آدمیست به نام مورتون یه نامی از طرف شاه ونیز میبره به چیز شاه اسماعیل علیه السلامی ها میخواد تحریکش کنه. اما خود این اختلافات جدید چیز جدیدی نبود در تاریخ اسلام از همون اول موجود بود یعنی متعدد بود. اما چیز تاثیر اروپا در نیگاریگری نگارگران از نقاشای از اروپا می اومد اما ما که قبل از اینا دوره محمد فاتی نقاشی اومده بود از اروپا و پورتری چیزوگیر کشیده بود فاتیح رو کشیده بود اما تا قرن 17 11 هجری 17 میلادی تأثیر خیلی زیادی نداره حتی میشه فرعنگ سمی گفت یعنی تو سفرنامه که نگاه میکنی از دخل از سفرگی وقتی میان اروپای ها از نقاشی ها و نگارگری‌ها نگارگری ها یعنی تو سفرنامه هاشون ذکر میکنن که برونی این چیز جالب یعنی حتی میشه بگم از این طرف به این طرف علتش, اینی که،, این، علتش این اینی که در نظر آنها تصویر در اسلام به شدت ممنوع شده، حرام شده <تصفيق> یک مجسمه، یک نقاشی، یکی, یکی میبینم تعجب میکنم میگنم، آه ما میدونستیم که اینو... حرام اینجا هست این بود بیشتر و ایلا اونا در نقاشی، در اون زمان خیلی پیشرفته تر بودن یه سوالی شما تو مقایسه بین نگارگری های عثمانی و صحبابی نکته ای فهمدید که نگارگری های صحبابی، غالباً اگه من درست فهمیده میشم، غالباً چهره محف میشه بر خلاف عثمانی ها محف نمیشه نمیشه نقاب همون پوشش پوشش داریم بله خب اینو یعنی ما اصلا این طرف عثمانی نجور نداریم که این پوشش داشته باشه مثل همین کردام مثلا پیغمبر رو تا دوره صفحه ما هیچ پوششی روی پیغمبر صورت پیغمبر نداریم دوره ایرخانی و اینا بعد از اسماعیل این شروع میشه از ایران عث حتی سیر نبی سیر نبی همزمان با این زبطت و تواریخ و اینا با چیست احسن الكبار صفوی نقاشی میشه اونجا باز صورت پیامبر حتی حاله هم برخی از اون چیزایش نداری تصاویرش که یعنی این طرف این به اون احترامی که <تصیح> سلام علیکم سهی بازم خودتون تأکیل کردید که همواره این احترام و این جرعت اینو نداشتن سفر که خودشونو مشابه مثلا چیز نشون بدن اون مشابهت بین خودشون این من خیلی جرعت نمی به خاطر این انتفاق که خب یه نظری قربی من داره؟ با بالا هست ببینید ما درباره تاریخ عثمانی اینقدر من بدارید Mm -hmm. ما وقتی که میخواییم یه چیزی رو یک سند یک عکس حالا عکس نبود اون موقعی یک نگاره یک کتیبه یک کاشی از اون دوره میخواییم اونو تطبیق بدیم میتونیم با متون از متون مختلف استفاده کنیم تاریخ هست دیوان هست ادبیات هست همین چیز هست mm -hmm. ولی درباره صفحهویه حرف زدن اینقدر سخت من به خیلی کم. ما <متصف> هنوز نمیدونیم شاه اسماعیل یا <متصف> الله <متصف> خدا <متصف> حافظ <متصف> شما <متصف> خصوصا اوائل بله همون هم مهمشینه دیگه دوره اسمایل تحماز <مصف> هیچ چی نمیدینیم میگیم که تحماز توبه کرده رفته امامی شده ولی توبهش رو میشه کنه دوباره توبه میکنه مثلا میانه این توبه شکنه چی کار کرد دوتا توبه چی کار کرد خب اول نقاشی رو حروم میکنه ممنوع میکنه بعد میگن که آقا شما که نقاش هستید آمیگه میگه آره من نقاشم دوباره اجازه میدن خب ما نمیتونیم حتی منابی ادوی هم نداریم مثلا شما دیوان های عثمانی ها رو از اون زمان از 1500 به بعد میتونید در دست داریم میخوانید تصویری تثویری جامعه اونجا می بینیم چی میخوردن چی می چی چیکار میکردن؟ خب و صفحوی ماهی چی نداریم؟ بر تاریخ آثار ادبی هم نیست هیچی نیست فقط حدس میزنی ولی حد من اینیکی شاه اسمایی اگر اون چند تصویری که در دوره اگر اون چند نیگار ای که داریم در دوره شاه اسماعیل و در تبریز نقاشی شده باشه یه چیز اون. ارتباطی که بینیم نقاب و شاه کردن و گروه کردیم ممکنه درست باشه ولی اگه شام دوره شاه ته ماسته نمیدونم باید بیشتر بررسی کنم. کرد اون نکته که عرض کردم شاید نزدیک سر تا سفرنامه اصلا به خاطر ممنوعیت نیست واقعا موجب از قدرت ند از اینکه شاه نسته همشین کاریه بود اینا کی دارن میگن ما دوره باله یعنی می خوام خیلی آه. از این جهت اگه میگویید بله چیز نقاشان ایرانی در همین دنیا مشهور بودند عثمانی دوم بدی نبود تو از چیز نبوده از اینکه ما شنیده بودیم ممنوع پس آها اگه منظورتون اینه بله نقاشهای ایرانی خیلی استاد بودن، حالا چه میگین؟ استاد بودن ماهر بودن عثمان اره ماهر بودن آثمانی دنبالی نبود خود سید لقمان ایرانی بود از از ایران آوردنش خود تاریخ نویسان هم ایرانی بودن عارفی، افلاتون اونا ایرانی بودن از ایران آورده نشد این سید مذهبش اهل سنت بود؟ علی حکیم، این تصویر Imam saab, امام حسین علی السلام دیوانه سر و امام حسین صرف چنموزه سر کوچیدم تو موتور تصوف اومده تو روایات ما من ندیدم یادم نیست ولی تو موتور صوفیه به ویژن کتابی که درباره لباسای صوفیانه هستر چی بود اسمش یادم نیست یه اسم عربی داره اونجا بگی که چون چیز تو میراجمنامه میاد ها چون امام حسن را مسموم کردن آدمی که وقتی مسموم میشه بدنت سبز میشه و امام حسین هم بالا، امام حسین هم شهید شد گردنشو بریدم. اگر که امام حسین شهادتش باشه، اگر امام حسین بقیتش را، اون پروتیج خلافه برشیدیم، قسمم این صورت نبود. ما اونجا هیچ دلیلی نداریم. مثلا هر چیز رو، هر فیگور رو، هر نگاره رو باید جداگانه شما تحلیل کنید ما نمیتونیم بگیم که اینجا چون امام حسین قرمز پشیده و علامت شهادت هستش اونجا هم همینه، نه اینطور نیست اون یه ترجیح بوده مثلا توی خودش، بالا اگر مثلا، یک مثلا خواهر نامه، نامه امام علی از اول تا آخر کتاب درباره امام علی هستش و در چندین نگاره ما امام علی رو میبینیم اگه تغییر کنه خیلی میتونیم بگیم که آیا این نقاش چرا مثلا این اختلاف از کجا میاد خب ولی اینا که پورتره هستن یه بار میاد اون مثلا اثمان یک بار میاد اونجا دیگه نمیتونیم دوتر رو مقایسه کنیم ترراهی اینا به عهده کی بوده که اینقدر نماد پردازی بشه اون تن... ما... ما تو... اینو خود به یا اون کاتب یا کسای هم بودن که این نماد پردازی ها رو اینقدر دقیق بگن این به چه معنا به چه, این به چه که بعدا ما بیایم بالاساس تحلیل بکنیم. ما در چیزنسخ مصور چندتا نگاره ای داریم که اون کار نقاش ها رو نشون میده یعنی خود نقاش خونه رو نشون می چگونه چجو، کار میکردن میفهمیم که بالاثر اینای ای کسی بوده آقای بوده و سلطان وقتی که یه چیز رو سفارش میداد و اون مثلا نقاش نمی ر یه سه چهار ماه گمشی مثلا بعدا دوباره بیاد بگی که آقا من کارم تمام شد نه اینطور نبود. ما از اون چیزا میدونیم که هم اسانید هست هم میداریا هست. جا می یک جا کار میکردم و همیشه سرشون رو به پادشاه، سلطان نشون میدادم. یعنی بله. بله. بله. خب اینجوری اگر باشه یعنی ما باید اینجوری بگیم که همه اینا زیر نظر سلطان مستقیم بوده. بله. سلطان به نظرم نمیتونسه اینقدر دقیق اینا نماد نمادپردازیارو بگه این اینجوری این اینجوری این نه اون چیز خلاقیت اون، اون متفکر بوده؟ هنرمند به یا... خاطر این شهنامه اینا مهم. اگه اون ذهنیت اون, اون... منطلیته ای رو نگرفته بود شهنامه جی نه مهم. مهم. البته یه چیزم بگم این این ذو تواریخ سه نسخه است یکی برای سلطان مراد مراد سوم تهیه شده یکی برای سیاوش پاشا یکی هم برای داروسا سع... آقای دارو سعاده اسمش آدم نیست یک سال فاصله داره اون دو تا سیابوش سیاوش و پادشاه یکی است تقریبا یعنی تمام نگاره های مرکب جوهرش فرق میکنه رنگش اینا ولی اون یکی که برای داروساده آقای دارو یا یعنی اون کسی که در حرم چیز داشت وظیفه داشت اون فرق میکنه اون خیلی شبیه به شمایل نگاری صفوی داره خیلی عجیبه مثلا اونجا ما این نگاری رو نگار نمیبینیم پیامبر پیامبر هم نیست براغ یک نور بالای براغ و ملائکه هستند. که این اولین بار صفوی ها این کار رو کردن به جای اینکه پیامبر رو اونجا رو براق نقاشی کنن، یه حاله یه نور گذاشتن. میشه استفاده کرد کتاب قبلش مثلا اتحاد به معادی چیزا داشتن، معادی به اینا داشتن. چی رو؟ تاثیرش اینه مثلا مثلا این تاثیر باشه یعنی که اگه قبل از سلفانیه این بار مثلا باگلی یه جوریه که دارن جسمانی نشون میدن، بعدش مثلا میخوان بهیانی نشون سه تا مرحاله هست در نگارگری اسلامی به ویژه اشخاص مقدس پیام یکی میگن وریستیک، یعنی اونا اولین هستش. هر چی که میدید میکشید خب بعد نوشتاری میگن هر فیگوری که میکشید بالاش مینوشت مثلا این احمده این مثلا فلان هستش نظر اون همه آه بله اینجا اینا هستش <تصفح> اونیه که کی... <صویت> لما <تصفح> مشخص <برقس> چی میشه نه <تصفح> نه <نام. تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> با چیزهایی با نقاب و این چیزا دیگه اون شخصیت جسمانیش شو، اون آن مثالیش میکرد، مثل اون حالا من نیکاب میکنم از یادم نیم که آتش بله، بله، همون، همون. این دیگه تکنی سوم بود. ولی ما میتونیم بگیم که این برای اون مرحله اول البته میتونم بگیم ولی اون دوغم نمیتونیم بگیم که اگه من اینو دیدم این نوشتر رو دیدم مثلا این مال قرنه سزده اینو نمیتونم بگم قرنه هفده هم استفاده میشه. این تکنیک هایی هستش که همیشه یعنی نمادین میشه نمادین آره نمادین بله نمادین قبولی سؤالی دیگه این تابلو که قایوغه که امام علی علیه السلام رو از این قداست دور کنه بله چه امام علی گفت اینجا شاخصی میتونید کلاد بقیه این صحابه پس من نمیفهمیدیم نمیفهمیدیم نمی شما نمی آره شما وقتی که میخواین میتونم معراج نداره علی ناطلب چه به معراج اینجا هم میراج اینا هم میراج نیست داریم میبریم میراج اومده که بره بریم میراج ببینید شیعه چی کار میکنه؟ اینجا خب شیعه چی کار میکنه امامالی رو میبره به میعراج میگو اونجا بود اصلا همراهش بود اینم هم هست دیگه قولات که اینا میگن تو روایات ما هم هست چیزهایی. بله این شما وقتی که یه چیز رو میخواین طرف مخاطب متمرکز آن باشه خب در وسط قرار میدین و اون یعنی اینجا اگر کنار اینامینی شمسان از کجا می دونیم که اینی حضت علی هستش، صحابی علی هستش؟ می نویش. آ؟ می نویش من. تو ای خاله جز؟ بود، ولی اون متمركز نمی شد بیننده. اینجا مهمین نیست که پیامبر درمیارم یه راج. مهمین هستش که علی من زمین نرفت با پیامبر. آره. اینجا میخواد بگه که با پیامبر نرافت حسن اون مهمه ببینید شما اهل سنت امام حسن و امام حسین و, و از اهل بیت می شماره از اعضای اهل بیت هستن. ها واده هستن ولی امام علی همیشه مورد بحث هستش نیستش آیا دوامات از اهل بیت میشه نمیشه این بحث هست اونجا دو نفری که پشت دادن تیزوز. نه نه از از اون آه. نه, آه نه. اون فکر کنم مهراب امر نماز میخوان اونا دستشون هم اینطوره دیگر <تصفح> در این شمسیت <حالت تصفح> خلفا هماز. اینا هم یا اون دو نفر هم هستن که اون طرف هم. خلفا نیست اینجا اگه هم هست نمیدونیم این تو هم نمیدونی که خوش میدونیم بوده خود نگید چون خواستن همین از اینکه عضرت امیرم دوباره تیدم برش والا این باید ما ت... تصمیت نظرهای دینی رو توی اون معماری اسلامی که تاثیر تفکرات فلسفی خیلی زیاد وجود داره یعنی از اون قوه بگیریم که داخلش دورن اون مقرنسکار از یک نقطه شروع میشه و چصفت پیدایم که به اصطلاف بشمیگن از کسرت به وقتر یا از وقتر به کسرت بالا یا اون هایی که در بالای درها هستش که به شکل دست دو دست به طرف بالا و به طرف آسوان هست یا تو تفسیر حالا مناره هایی که حالا در مراقل عطاوات مقدسه یا در مساجد که اینو به خاطر اینو ساخته میشده تا شخص وارد که من خودم یک که که در کرد وقتی وارد میشد تا مناره رو میدید، یعنی وارد حیات مسجد میشد و مناره داری میدید ناخداگاه سرش به طرف بالا میرفت و به اصطلاح خودشون سرد رو از زمین میکندند و با آسمان میبارد اصن طرف رو زمین باقی نمیدود این نگاه بود این تفکرات اون تو این ممورینگ بال ما اینا رو میگیم تاثیرات فرامتنی. نی اگر حامی شما آدم فیلسوفی باشه یا اینکه خیلی علاقه مند به فلسفه باشه مثلا م.. مجموعه های چیس آنتولوژی های اسکندر سلطان دو تا مجموعه برآشته تهیه کردن اون رو میبینید هیچ رابطی به هم دیگه نداره تصاویر بله هر کدام عمیقه خوب اونا رو برای تفسیر اونا تحلیل اونا باید یک کم فلسفه هم بدونید هستش کلام هستش مثل اون شانی، رایه یه چیزی یهودی هستش پشوهشگری یهودی هستش اسرائیله درباره یک نگاره یه تاریخ بالعامی مقاله نوش نگار خیلی چیزه کهنه هستش عنوان مقالش هم تصویر پردازی حدیث سقلی بحث کلامی میکنه اونجا دوره ای بود که علم احلی زندگی کرد نقاش نقاشی کردن اون کتابو، بحث کلامی میکنه من هم تو مقالهام کردم این رو مثلا اعتقاد قدیری من هفته نگاری رو بررسی کردم اینجا ستش را بردم که طول نکچی خیلی اعتقاد چیز اعتقاد نامه قادیری چی تاثیر بر نگارگری دوره سلاجق داشت مثلا اینا هستی فلسفه هم چیز مربوط میشه حتی چیز کارخونه های تکستیل مثلا لباس و اون دوره رو هم باید شما بدونید که مثلا این لباس رو چرا اینطوری کشید؟ این چی معنی داری اینجاونی <سطور> <الانترقی> که آیر <نظر> داشته آره ببین؟ اینا رو ما می که در دوره ایلخانی تیراز می بهش. خب البته اینجا ممکنی تراز نباشه چون اینجا هم تکرار شده. در دوره چیز اون جامعه تواریخ رو که می بینین، نگاره‌هایش هم دارن اینجا، بند خب رویش هم نوشته لا اله الله. یعنی این مسلمانه این فیگور مسلمانه. اون یکی که نداره چیزا کافر مشرکه حالا مسیح سیاستش. و بهترین چیز فلسفی رو بحث فلسفی رو در چیست نگارگیری در اینجا یک مقاله ای هست از گروبه قیبت حقیقت اولین بار نشون داد که خداوند چگونه در نگاره ها تصویر پردازی شد تمثیل خداوند در نگاره ها این خیلی بحث فلسفی کرد که این نگاره رو بررسی کرد اینجا این هم میراجه خب ولی بعض هم یه سراغه هست اینجا ملیکه نگاه میکنن این به کجا میره؟ به خدا هم میره تمثیل های خدا در نگاره های اسلامی یه مقاله به زبان آلمانی بود ترجمه کرد و گذشتیم اینجا اکا که اکاکی من آخرین سوالم رو میپرسن بفرمان خواهی قصه‌ای نگاه‌هاست من رو که دستایتی کرده بوده به ببینید این زمینه‌ی ای که شاه داشت مثلا خاج علیه سراختون شدن در شرف جنوی امام علی علیه جایگاه ویژه‌شو داره آه؟ در نصابق که تو آناتولی هست هم حضور داره اما، این انتخاب 12 امام تراث پسر با ما این از کجا ببینید ما شاه اسماعیل وقتی که بچه بود بردنش گیلان 6 سال اونجا بود چی کار کرد چه خوند چی یاد گرفت ما نمیدونیم و تحقیقات آخر نشون میدی که برخی از این اعتقادات که اونا داشتند از قزلباش ها یاد گرفتند سوال اینه که دوازده امام و تاکید بر امام علی در قزلباشی نبود اون زمان قزلباشی اسمیست که در دوره شیخایدار میاد دیگه. قبل از اون ما گروه داریم که پروتو آنها هستند. یعنی yani, پروتو چی بشه؟ قبل زونا خلف آنها هستن چه سلف آنها هستن بکتاشه نه، بکتاشه خیلی بعد تره وفائیه، ببینید یک نقشه اگه بکشیم وفائیه میاد قرکنیه از اونجا یک شاخه میاد یک شاخه دیگه میاد می بینیم که نصف ترکیه اون زمان آدمهایی بودند که مثل قزلباش ها بودند یعنی به قزلباشی تبدیل شدند خلوتیه نه نه اونا خیلی سنیان اینا بیشتر قرکنیه اون چیزا خب کی این گروه ها به میان این گروه ها اعتقاد به امام علی اینقدر قوی شد و اسم دوازده امام اومد اینو اگه جواب ندیم نمیتونیم جواب بدیم. ما میتونیم که قبل از شاه اسماعیل دو... چیز اشعار به نام 12 داشتن اینا حتی قایقس زابطلام داره حتی یونس امر هم داره دوازده که میگن در هر قطعه اسم یک امام میاد با امام علی شروع میکنن دوازده یا چهارده قطعه میشین اشعار خب اینا رو ما قبل از شاه اسماعیل هم داریم خب. ممکن است شاه اسماعیل از اونا یاد گرفته باشه یا چون, اون... بله. چون اون چیزی نزدیک بله چون اون هفت نفری که سفیان اللهی جان میگم بهشون سفیان اللهی جان هفت نفر بودن بعدن هم در چیز دولت صفویه منصب داشتن اینا صدر بودن اینا یاد دادم به اسماعیل ولی چی یاد دادن ما نمیدونیم یه کار قشنگی که آقای جفتریان کرد روی این کتاب مهمون پدر مکتبت علامات هلی من باید که نسخه های محاجر نه علامه هلی که قبل از دوره صفحهی در ایران کتابت شده نشونده چقدر در دوره تریموی که این طوری فضا بازداره در نسخه های کتاب های علامه هلی در ایران نوشته میشه اون من نوشونده بایدی بایدی هم روزایی بشنگه سراغش نوع بوده که شاقا مثلا از اون مدیدترین شاگردان علامه اهلی از ات بشنگه بابوده خب. خب این معهید مح... این هست که این چیزی که شای اسماعیل میگه یه زمینه اجتماعی خیلی خضاری داده ولی شما می ک... که شما در شعبای مختلف ایوان از خندمه اهلی کتابت میشه ولی چه جانب هستش که وقتی که دولت صفویه رو تهسیس میکنن حتی یک کتاب هم ندارن برای تدریس یک کتاب دارن دیگه میکنی اگر تبریز که آره. کتاب فخری بین کل تبریز میکرد یک قواعد را احکام کرد مرزا عبدالله افردین افردین افردین فقط دو تا کتاب بود یکی ملای از در ببینید یه اومدن داره میکنه پس نسترش نمیگه حالا اونقدر هست که بدونیم مزرگلو افرمی آدم خیلی دویگی بوده یعنی آثار که میبینیم میگه فقط دوتا کتاب پیدا کردن یکی صحیفه بود که گاهی وقتا خیلی کم کنده میشد یکی کتاب شیخ صدوق و ی هیچ کتابی دیگه شید نه خب الان خاطر باز تعریض میگه نه ایران نمیگه کلاً دیگه میگه آره. منطقه از صفویه جبل عمیل دعوت میکنن از سوریه ممتیم. قبل از جبل عمیل از سوریه دعوتشون میکنن دشمنان صحبت بده نبوده بحث جووان بعد تصریح به بحث کتابم کشیده شد و این که بخود و ما چیز میدونیم که این میونه قزلباشا اولما نبودن اولما این اولما انقلاب رو نکردن دولت صفوی رو اولما تاسیس نکردن اون باوره که شاه اسماعیل اطرافیان شاه اسماعیل داشته ما میدونیم چیه خو، وقتی که چیزی مشخص هستش از تخمین ها که ما حرکت نمی‌کنیم که ما میدونیم که اونا چه اعتقاد داشتند خب مثلا اشعاری یونس امرو رو تکرار میکرد چه اسماعیل تو دیوانش هست حالا اینجا در ایران دیوان شای اسماعیل رو جدی نمیگیرن میگن که اون سخته و پرداخته است. آقا بیست تا دا نسخه داره تقریبا تمام شاهان صفوی اینو حامی شده کتابت شده بهترین خطات های خوشنویس های ایرانی اینو بازنویسی کردن اگرش با آره نمیفهمن خب. آره این هم هست یعنی متوجه نمیشن هیچ استناد نمیکنن در حالی که اونجا گفته هرچی که اعتقاد داره اونجا میگه حالا شما نسخه رو مقابله کنید هر نسخه ای که داره فقط اون اشعار رو بگیرید ده تا بیش یا 15 تا بیش که این کار رو هم کردن نخیره همون رو بگیرید اگه این کار تردید دارید مثلا باز هم مشخصه شایی اسماعیل کی بودش چه اعتقادی داشته و از اون متونی که از اون دوره مونده دستان هاینا هم مهمه ما میدونیم که اطرافیان شاه اسماعیل شه اعتقادی داشتند حتی جنید نه دقیق ولی میدونیم ایلخانی خیلی مهم موند دوره بعد از الخانی ها چی شد؟ عادت قصصفر سفریه و بالا یعنی شکی بعد از اون چاپ بالا. کردن کردم بله بله اون کردن اون سندی دیگه سن یه سند چاپ داشتن. کرده بله من ندیدم دیدم هنوز ندیدم. در من گوتي بقبل از صفت و صفاست باله باله باله شنیدم ولی نخونه سفت اصلا اونجا نصبه به طور کامل اومده کرده لفت و در حالا مذهبشون هم این نوقات خیلی چی خیلی یه از من اتیم این مسئلی سیالکرمدی، حالا من مقال ایمان موتور اران تو ذهن نمیست که نمیست که نمیست که قبل از اصلا نصب نامر، و تاریخ هشتاد خورده ایداره که بعد از صف الصفو و خرده نه که داره مال دوگه شاه طهماسب بله دو نسخه قبلش نداره ولی این وقتی که بیاد میگه اصلا بحث صافات ولی دو کهن نداره اون مساله و یه نقطه در این زمینه این که طریقت صفوی شاخه سنیش بعد از سفریه همچنان تو شام ادامه داره و میون اتباع سنیه طریقت سفریه مسئله سیادت شیخ صفی اصلا مطرح نیست و این به نظرم خیلی مهمه یعنی مطمئنا اگر سیادت شیخ صفی به منسوب بود قطعاً میونشون تغییر می‌شد چون چون از میون خود اون مولدا و طریقت اطباء طریقت صادات سنیه طریقت صحفهوی هستم و اونا همون سیادتشون سخت شده ولی هیچ خودشون هیچ اشاره هستن به سیادتشیز ندارم به نظرم این منابع من خیلی کمه تو برس درستم و من صفهویه و این برس شیعه و سیادتشون یه نقطه یه دیگه یه نقطه ای دیگه دوتا ترجمه از صفت صفا داریم به ترکی قبل از اینکه ته معصب بازنویستی کنن دست سورو بده که باز نویسی کنن تو اون ترجمه هم درباره باره سیادت شیخ صفی چیزی نیومده بله این بحث همین دوتا ترجمه که معتبرم هستن این ترجمه ها چاپ هم شدن این خیلی ببینید این فکر کنم مثل خلافت نامه ها میمونه خلافت نامه ها سیادت نامه ها قبل از ممکنه ارجاب داده باشه نمیدونم. نمیگم که این طور نیست ولی. نیست. تو... بحث آجا. این که مرس... این اتفاق از دوری شاعتنماس نایفتاده. این اتفاق اگه قرار اتفاق از دوری جوند اتفاق افتاده. این اصلا الان بحث این نیست که بحث سیادت اه... خاندان صفحه از زمان شاعتنماس اتفاق افتاده. بحث اینه که از زمان جوند که برای اولین بار هم به تشایع و اش پیداکت بیر ارتباط بیشتر تو این بله. تو اشاره هست نه. تو اشاره هست مادرش؟ مادرش یه خودش رو نمی‌داره <تصفح> بله با ولی ها اون که گفتین از دوره شیخ <تصفح> جنید این گفتین که از شیخ جنید به بعد سومون سمونجو بابا همون ولی الدین اکثرایی که چیز بود مورید صدر الدین بود در دوره خاجی علی پدر شیخ جنید از اون جدا میشه به خاطر چیز؟ تشی گرایش به تشی جدا میشه چون خاجی علی گرایش به تشی داشته از چهیز جدا همش میاد اناتولیه برمیگرد اینجای حالا سوال باشه که آقای شدن و خوشم میاد. به طور کلی نگاری اسلامی میشه گفت که بیشتر متأثر از هنر دیگه. خیلی تخصص می بخاطر ولی منوی می بیشتر. بیشتر من هر چی خوندم اسم منوی منیزم. چون مثل اینکه اولین کتاب چیز مصور مقدس رو ندارن ها؟ این چیز رو در باره نگاه گرمی تو دوره صفحه نوستان که ما زیاد داشتیم با اونجور نوزور و بعد در دوره باجاره نسبتا میشه گفت ناوود کردن باجاره خود به خود دیگه بعد از قرن 17 میلادی 11 هجری تک نگاری ها پیدا میشه اوروپایی سب که اوروپایی اینجا رایج میشه در عثمانی و ایران از 17 به بعد یعنی قرن 11 به بعد دیگه از بین میره به جای اون تابلوها میاد اروپایی میشن. آلبوم صفوی که میگم مثلا بله شما همین نقاشی‌های دوره مثلا صورتی کتاب از بین میره ولی به صورت تابلو اینا در میاد. اونا اونا از پرسپکتیو پرسپیکتیف خیلی زود استفاده میکنن ما خیلی دیر یعنی اصلا نقشان مسلمان پرسپیکتیفو قبول نداره خیلی دیر چیز قبل از هفتم قبل از سوال قبل از ببینید ممکن است باشه ولی نسخه‌ای که به دست ما میرسه قبل از هفتم نیست یعنی هست ولی بیشتر اگه هم هست اشون اینجا هستن حالا کم و من یک چیز تو کتاب چیز دیدم کاغذ در تمدن اسلامی نه اه... یک صفحه از لیلی و مجنون یک صفحه منده از اون اینجاش هم پاره شده تصویر لیلی هست ولی اون تاریخش کی هستش یادم نیست ولی به نظرم بود چون ما همیدینیم که تو هممه ها اینا قصرها نقاشی داشتن اینا تصویر داشتن اموی ها بازی ها اموی ها داشتن؟ باد باید. باید. باید. درست بکتیم از کی هف... قرن 17 میلادی باد خیلی خیلی متشکرم از اینکه با سبر و شکر بایی خوش دادید امیدوارم فارسیم هم پیشرفت کنیم هم بار دیگه بیام اینجا راحت صحبت کنیم ها بله بله دفعه بعد انگلیسی صحبت میکنم خیلی متشکرم محمد آل محمد صلوات اللهم صلق علی محمد و آل محمد و عجل فراجه